فصل سوم آه برای اولین بار در این آپارتمان تا حدی احساس آرامش می‌کردم. تمیز و گرم بود و من وقتی پالتوام را به جارختی آویزان میکردم، و گیتارم را گوشهای میگذاشتم. فکر میکردم که یک خانه شاید چیزی بیش از وسیلهای برای گول زدن است. من هیچ وقت یک جا بند نشدم و هیچ وقت هم نخواهم شد. ماری بیش از من این حالت را دارد، ولی به نظر می‌رسد که بالاخره تصمیم گرفته برای همیشه یک جا بماند. وقتی من بیش از یک هفته در شهری می ماندم، ماری احساس ناراحتی میکرد مونیکا زیلوز این بار هم مثل همیشه لطفش را دریغ نکرده بود و مانند سابق که ما تلگرام می کردیم کلید را از ترایدار گرفته بود، خانه را تمیز کرده بود و در اتاق نشیمن گل گذاشته بود و یخچال را از هرچه که فکرش را به کرد، پر کرده بود. غهوه آسیاب کرده روی میز آشپسخانه بود و یک بطری کنیاک آن. سیگار و یک شمع روشن را پهلوی گلدان گل در اتاق نشیمن گذاشته بود مونیکا می تواند به شکل وحشتناکی احساساتی شود تا جایی که پیرووی از احساساتش می تواند او را دوچاره کچ سلیقه‌ای کند شمعی که مونیکا در اتاقم گذاشته بود از آن شمهایی بود که با عشق مصنوعی تزیین شده اند شام هایی که مطمئنا اتحادیه کاتولیکی بررسی سلیقه ها آن را قبول نمی کرد ولی شاید مونیکا شمع بهتری پیدا نکرده بود یا پول برای خرید شمع بهتر نداشت من حس می کردم بی که در انتخاب به کار رفته درست تا آن حد بود که تک همسری لعنتی من احساس و علاقه را نسبت به مونیکا زیلوز محدود می کرد کاتولیکای دیگر جمع هیچگاه به خطر احساساتی بودن یا بی بودن تن نمی دادن. در هر صورت کاری نمی که دستشان باز شود و اگر هم مواردی پیش می آمد بیشتر در مسائل اخلاقی بود تا در مسائل مربوط به سلیقه. حتی بوی عطر دلانگیز مونیکا که برای او بیش از اندازه مدروز و تلخه است، عطری که گویا اسمش تایگا باشد، هنوز در آپارتمان به مشام می رسید. یکی از سیگارهای مونیکا را با که روی میز گذاشته بود آتش زدم، بطری کنیاک را از آشپسخانه و دفتر تلفن را از راه رو را آوردم و گوشی تلفن را برداشتم. مونیکا حتی تلفن را هم وصل کرده بود، صدای زیر بوق تلفن به نظرم مانند زربان قلبی بینهایت گشاد آمد در آن لحظه این صدا را بیش از همه دریا، نفس طوفان و نعره شیر دوست داشتم در یک جای این بوغ, بوغ زیر صدای ماری، صدای لئو، صدای مونیکا نهفته بود آرام گوشی را روی تلفن گذاشتم تلفن تنها اصلی بود که برایم باقی مانده بود و من به زودی از آن استفاده می کردم پاچه ی راست شلوارم را بالا کشیدم و نگاهی به زانوی ورم کردم انداختم زخم آن سطحی و ورمش بی خطر بود گیلاسم را پر از کنیاک کردم، نصف آن را سر کشیدم و باقی را روی ورم زانویم ریختم جست و خیز به آشپزخانه رفتم و بطری کنیاک را در یخچال گذاشتم تازه در این موقع یادم آمد که کاسترت بطری عرقی را که قرار بود بیاورد نیاورده بود حتما او تصور کرده است که از نظر اخلاقی و تربیتی بهتر است آن را نیاورد و با این عمل به امری مسیحی هفت مارک و فنینگ فایده رسانده بود. تصمیم گرفتم به او تلفن کنم و خواهش کنم که این پول را برایم بفرستد. این سگ سگنیوایس قسر در میرفت از آن گذشته، به پول احتیاج داشتم پنج سال تمام بیش از آنچه می خرج کنم درآمد داشتم با این حال تمام آن را خرج کرده بودم. البته وقتی زانویم خوب می شد می توانستم کارم را در سطح سی تا پنجاه مارک ادامه بدهم در واقع برایم تفاوتی نمی کرد. تازه مردمی که در این های کثیف جمع می شوند. نسبت به من حتی مهربان از مردم واریته ها هستند ولی سی تا پنجاه مارک در روز خیلی کم است اتاقهایی که با این پول در اختیار آدم قرار می خیلی کوچک است و آدم هنگام تمرین به میز و گنجه می خورد. در زمین من عقیده دارم که حمام تجمل نیست و وقتی آدم با پنج چمدان مسافرت می کند سوار شدن تاکسی ولخرجی به حساب نمی آید. با کنیاک را از یخچال بیرون آوردم و جرعه سر کشیدم. من الکولی نیستم اما از وقتی ماری رفته است الکول به من آرامش میدهد به بیپولی هم عادت نداشتم و این واقعیت که فقط یک مارک در جیب داشتم و امیدی نداشتم که در آینده نزدیک چیزی به آن اضافه شود مرا خشمگین میکرد تنها چیزی که میتوانستم بفروشم دوچرخهام بود ولی اگر تصمیم میگرفتم برای گذران زندگیم دوره بگردم و نمایش اجرا کنم دوچرخه لازم بود تا دیگر نیازی به تاکسی سوار شدن نداشته باشم آپارتمان را هم نمیتوانستم بفروشم آن را به شرط نفروختن و اجاره ندادن به من بخشیده بودند. وقتی آدم‌های پولدار چیزی را به کسی هدیه می‌دهند، همیشه یک جایش می می‌لنگد. بالاخره موفق شدم دست از نوشیدن کنیاک بردارم. به اتاق نشیمن رفتم و دفتر تلفن را باز کردم.